بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والشهداء المرسلين وآلهم وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاءك حق قولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق دهمن قسمت از این حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم و نبیون حق پیامبران الهی حق این اموری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن یاد میکنن در این حدیث که حقا بهشتش جهنمش گفتیم که باید ما را مشتاق به دیدار الهی بکنه لقاء پروردگار حقه باید ما را مشتاق بکنه به لقاء پروردگار بهشت حقه باید ما را مشتاق, مشتاق بکنه و جهنم حقه باید ما را پرهیز بده باید ما را دور بسازه اون حقیقت جهنم از الله هم بخوایم وچرا سُلاسلأ، چند تا دعا دعایش گفت اللهم انی اسلک الجنه و ما قرب الیها من قول و عمل، صلی الله بخیر. مرا یاری بده برای رسیدنم به بهشت. على ان سلعه الله غالیه بهشت الله گرانه کاله گرانه به آسونی به دست نمیاد. با سنين سنين زحمت زیادی بکشیم برای رسیدنم بهشت الهی. باید از الله بخوایم هم بهشتش هم اون چیزی که ما رو به بهشتش و ما قرب الیها من قول و عمل و اعوذ من الله بخوایم پناه ببریم به الله از جهنم. و ما قرب اليها من قول و هر از آنچه از گفتار و کردار که ما را به جهنم الهی نزدیک میکنه ما را الله ازش دور بسازه هر عملی هر گفتاری به سبب میشه ما را الله توبیخ بکنه به خاطر اون عمل الله از ما دور بسازه بس این حق گفتن فقط نباید مجرد ادعا باشه بر سر زبان باشه بلکه با عمل بشه تویم مسی به عشت الهی با برپا نماز تهجد نمازهای نافله اذکار و حق ایمان به پیامبران حقه باید ما به تمامی پیانبران الهی ایمان داشته باشیم آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و وكتبه و کتوبه و رسله هم ایمان به کتابه آسمانی و قوله که حق کتابه آسمانی سخنان الهی بوده حق پیانبران الهی هم برحق بودن گزینش و انتخاب الهی بودن الله انتخابشون کرده و ما باید به تمامی پیامبران الهی ایمان داشته باشیم ایمان داشته باشیم که اینها بهترین خلق بودن هدایت شده بودن بر روی صلات مستقیم بودند دعوتگر ناصح امت بودن انتخاب شده الهی بودن و وظیفه شون ابلاغ رسالت الهی نهی که اونها را بپرسیم. و در اونها قلوب بکنیم و ما علی الرسول الا البلا قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی بشری مثل شما من واحی میشه پیامبران الهی حقا و به سوی حق دعوت دادن. رسولان مبشرین و منذرین تا ان لا یکن الله حجه بعد پیامبرانی فرستاده شدند که ما را هشدار بدن از جهنم و بشارت بدن به بهشت تا اینکه اتمام حجت بشیم و عذری نداشته باشیم در روز آخرت باید به تک تک پیامبرانی که اسمهاشون در قرآن اومده ایمان داشته باشیم به نوح ابراهیم موسی عیسی زکریا تمامی پیامبرانی که اسم و یادشون اومده در قرآن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب الأصطي وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وأتينا داود الزبورا هم يبين برمضان بشون إيمان دش دبشه منها إنتخاب شديء إلاهيبودن الله يصفي من الملائكة رسولا ومن الناس همزم فرشتگانش الله فيما وراني إنتخاب مكناد بسيب شر بهمزم بشر فيما را إنتخاب مكناد مسئولیت ابلاغ وحی بر دوش آنها گذاشته، باید ایمان داشته باشیم به با این انتخاب الهی. این جایگاه, جایگاه نیست که انسان بهش برسه. این جایگاه اکتسابی نیست، بلکه این شرف مقامی که الله بنده ای که انتخاب کرده به اون شرف نائل میکنه. این شرف مقامی که الله عطا میکنه به بندگانش. اون کسی که بخواد، اون کسی که صالح و مصلح باشه، الله انتخاب میکنه برای رسالتش. اون کسی که احلیتش رو داشته باشه مصلح باشه یوسف علیه السلام مصلح بود صالح بود الله از بین دواززه برادر از فرزندان یعقوب علیه السلام یوسف رو انتخاب میکنه و الله ازش یاد میکنه که بنده مصلح و مخلصی بود چون مخلص بود انتخابش کرده الله جلشانه برای مقام نبوت و رسالت بس شرط انتخاب الهی اینه که اون شخص از مخلصین و مصلحین باشه باید آد اهلیت این مقام نبوت و این شرف این مقام رو داشته باشه تا الله او رو انتخاب بکنه این تکریم الهی نسبت اون بنده ای که صالح و مصلحه الله مکرم میکنه اون بندش و این وظیفه ابلاغ وحی رو بر دوش اونها میسپره و نبیون حق و محمد صلی الله علیه و سلم حق پیامبران حق و محمد حقه محمد از لابلای این همه پیانبر بنوان اینکه خاتم النبیینه بنوان اینکه پیامبری که بعد از اون دیگر پیامبری نخواهد اومد و وحی از آسمان قت میشود و سید الانبیاز و صاحب اللبای حمد در روز قیامت باحت بشه اعتقاد داشته باشه ما كان محمدون ابا احد من رجال کن ولکن رسول الله و خاتم النبیین ختم نبوت بوده رسالتش پیغامش، پیام الهی اتمام شده بر بندگان تمام شده و کامل شده اليوم اکملت لکم دینکم و اتمامتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینه اون اسلام محمدی هست که الله بر بندگانش و راضیه بر اونها اما دیانتها و بدعتهای من دروردی ملاها خوابهای بعضی از صالحین مدرکی نیست، دلیلی نیست، برهانی نیست الله اذین لکم راهی برای شناخت اذن و اجازه الهی نیست جز مقام پیغمبری و نبوت باید اون پیغمبر بیاد از الله به ما ابلاغ بکنه تا ما بدونیم الله از من چی خواسته بعد از ختم نبوت دیگر درهای ابلاغ بر این امت بسته شده کسی نمیتونه ادعا بکنه که من در خواب دیدم یا من فلان عالم بهم گفته حرف کسی دیگر مدرک نیست حجت نیست بلکه وحی الهی فقط حجت و مدرک همون طور که الله جل شانه بندگانش را مکرم میکنه و مشرف میکنه با وحیش شیاطین هم برای خودشون اولیا دارن که بر اونها وحی میکنن اینو با بدونین اون کسی که در خواب میگه من فلان چیز را دیدم فلان چیز را حرام میکنه و فلان چیز را حلال میکنه با ان خوابش بدونیم چون درهای وحی بسته شده و دیگر جبریل بر بشر نازل نمیشه و اینه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین جبریل امین بر پیانبه صلی اللہ نازل شده و بعد از وفات رسول الله صلی علیه و وسلم دیگر جبریل بر کسی نازل نشده و نمیشود چون رسالت ختم شده تمام شده قولا مرزا احمد قادیانی در هند بلند شد و گفت که من بر من وحب میشه و خدای من با زبان انگلیزی با من صحبت میکنه این زبان مقدسه یا به شیرازی پیغمبر بهایی ها ادعا کرد که الله با زبان فارسی باش صحبت میکنه و الله سخن فارسی گفته و با فارسی باهاش حرف زده اینها پیغمبرانی از سوی شیاطین به سوی بندگانن نه پیغاموران الهی چون سالت الهی با نزول جبرئیل بر رسول الله صلی علیه و وسلم ختم شده خاتم النبیینه و دیگر بر کسی نازل نشده بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اون وحی که بر اینها شده وحی از سوی شیطانه چنانچه الله در قرآن میگوید و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم شیاطین بر اولیای خودشون وحی میکنن بر حواداران خودشون بر اونهایی که دوستارشونن شیاطین به اونها الهام میکنن قلحل اونبه کم علامن تنزلو شیاطین میدونید؟ شیطان بر کی وحی میکنه؟ تنزلوا على كل افاکن اثیم در اون انسان دروغگو و گناهکار شما نگاه بکنید جادوگرانی که با جنیان ارتباط دارن آدم پاکی در میان اینها نمیبینی یا دروغگویان یا بینمازن یا دزدان یا خیانتکارن یا صفات و خصال نیک از اونها نمیبینی کردار و رفتار ر برای اینکه ببینن مقام مشرف بشن مقام شیطانی و وحی شیطانی باید مرتکب گناه و معصیت بشن تا اینکه به این درکات برسن به این و ذلت برسن به جای اینکه بنده الله بشن بنده شیاطین میشن چنانچه مله ها رو میبینیم بعضی از این مله های جادوگر که خروس و بزرگستان و برای جنیان سر میزنن ذبح میکنن برای غیر الله تا اینکه شیاطین بر اونها وحی بکنن و الهام بکنن پس کسی اگر بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعاکه به شبح شده حلالی را حرام بکنه یا حرامی را حلال بکنه با اینکه در خواب دیده یا برش وح شده بدونیم اون شخص کذاب دروغگوست چون رسالت محمدی علیه الصلاه و السلام خطر شده رسول الله صلی الله علیه و سلام بس حق و غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلام کسانی که بعد از او آمدند ناحق هر کسی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلام بیاد حق رسول الله صلی الله علیه و سلام ختم نبوت شرف مقام رسول الله صلی الله علیه و سلام بالاتر از بقیه پیامبران به خاطر اون شرفی که الله بهش دادن از اون توفیقاتی که الله نصیبش کرده توفیق به اون عبادت و اون جهاد اون سختی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلام کشید هیچ کس پیامبران نکشیدند اون سختی هایی که کشید و اون جهادها و زجر و شکان که از قومش دید در مکه و بعد در مدینه همه پیامبران سختی کشیدن نوح ابراهیم ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم از میان تمامی پیامبران برتر و بالاتره. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید انا سید ولد آدم و لا نمی کنم. برترین فرزندان آدم رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمان. همه پیامبران رو قبول داریم ولی که مقام رسول الله صلی الله و بالاتر و از بقیه پیغمبران معجزاتی هم که داده شدن برای تایید نبوتش بالاتر و بالاتر از بقیه پیانبران اگر موسی با عصایش به صخره می زند که چشم جاری بشه رسول الله و جانش جاری میشه اگر عیسی علیه السلام در گهوار سخن میگه رساساتن در کف دستانش سنگ سخن میگه سنگی که زبان نداره بچه که زبان داره این معجزه بالاتر بالاتر از اون معجزه عیسی حقه النبیون حق ما اقرار میکنیم پیامبران الهی حقا با حق اومدن که محمد علیه الصلاه و السلام شرف و مقامش بالاتر و بالاتر از بقیه است اگر با موسا موسی دریا شکاف برمیداره و نصف میشه و عصای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هدنسفی میشه در آسمان این بزرگی ما نمونه های مختلفی از معجزات بزرگ رسول الله صلی الله علیه و داریم مثل گریه اون تنه نخلی که راستا بسیارش خود ب میخونن وقتی که منبری ساختن گریه وزاری میکن سخایی که ما شنیدیم گریه وزاری اون تنه بریده شده این نخل وقتی که شروع به گریه وزاری کرد نه معجزاته معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم غیر از اون قرآنی که وحش شده بر رسول سلام معجزاتش زیادن که صحابه دیدن و با, با چشم خودشون دیدن و به ما هم نقل کردن توازه این قسمت از حدیث و ساعت و حق ساعت منظور قیامت قیامت حقه قیامت برپا میشه با دمیدن در سور و نفخه في السور کی در سور میدمه؟ اسرافیل شیپوری هست اون سور که اون شیپور را اصرافی البدع گرفته و سرشو خم کرده و منتظر دستور و فرمان الهیه که در اون سور بدمه و این کیهان و کهکشان نابود بشه یوم تتبدل الارض و غیر زمین و ستارگان در هم کویده بشه و باز بار دیگر در سور میدمه و تمامی خلایق بر روی زمین این زمین صاف و هموار بشه و بر روی این زمین انسان ها از درون این زمین بیرون میان یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه یعنی قیامت برپا میشه وقتی از قبل تبهگاران بیرو میان میگن که ما لحظه بیش بر روی این دنیا نبودیم در این دنیا نبودیم یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون مجرمون اونجا خاموشن اونجا ناامیدن سرگردونن سرفکنده است سرفراز نیست ولی مؤمن سرفرازه رازه پرونده رو به دست راست میگیره و یوم تقوم الساعه یومئذ يتفرقون اونجا مشخص میشه کی بر حق بوده روز قیامت و کی ناحق بوده اونایی که بر حق بودن پیروی از پیامبرانشون کردن وارد حوز پیغمبرشون میشه یاران و یاوران و هواداران محمد صلی الله علیه و سلم و پیروانش وارد حوزش میشن و بدعت و ستم و از حوز رسول الله صلی الله علیه و سلم رانده میشن فرشتگان جداشون میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش نشون داده میشه کسانی که جدا میشن بعد میگه چرا اینها نمیذارید که وارد حوزم بشن از امتم فرمودن فرشتگان بهش میگفتن که نمیدونی که بعد از تو چه بدعت ها و چه گناهانی انجام دادن من احدت من بعدک نمیدونی اینا مستحق ورود به حوزت نیستن اون حوزی که از صدرت المنتهی از بالای آسمان هفتم از اون درختی که در آسمان هفتمه که دو تا رود از اون سرچشمه میگیره به دنیا و دو تا رود به بهشت از اون رود در سرزمین محشر از اون آبش وارد حوض رسول الله صلی علیه و آله میشه و میفرماین جام‌های کاسه‌هایی که به دست افراد داده میشه که ازش بنوشن در اون حوض به تعداد ستارهگان آسمانه اون آبش سفیده اون آبی کسی اگر ازش بنوشه دیگه هیچ تشنه لب نمیشه اون در اون سرزمین سختی که 50 هزار سال بعد انسان منتظر بشه تا حساب و کتاب بشه اونجا دیگه درختی نیست که انسان ازش بخوره یا آبی نیست که ازش بنوشه جز اون آبی که وارد حوز پیامبران میشه و از اون حوزها حوضه رسول الله صلی الله علیه وسلم که هر کسی بهش مشرف نمیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من کسانی که پیروانم هستن رو وارد این حوز میکنم گفتن که صحابه گفتن چگونه میفهمی که اینها پیروانت هستن فرمودن از آثار وضوشون نوری که در چهره و دستشونه و پاشونه هست از آثار وضوشون اهل نماز بودن اهل تهجد بودن رسول اساس اونها رو میشناسه و وارد حوضشون میکنه ولی کسانی رانده میشن از این حوز با عذاب بکشن هزار سال در اون صحنه محشر و ان ساعه اتیه لا رایبه فیها شک درش نداری یوم یتفرقون اونجا هست که انسان از پدرش از مادرش فرار میکنه از خواهرش از برادرش فرار میکنه نمیخواد چشمش به چشم کسی بیفته از بس که ظلم کرده در حق پدرش در حق خواهرش در حق دوستش همساییش از بس ظلم کرده تبکاری کرده ستم کرده اونجا هست که الله حين ينادي يوم تقوم الساعه يوم اذ يتفرقون یک چش به هم زدن انسان نمیدونه که از دنیا بره هیچ کدوم از ما عجلمون رو نمیدونیم که قیامت ما برپا میشه با قبض روحمون روهم که قبض شد ما دیگه در سرای برزخین نه در این دنیا دیگه فرصتی برای توبه نداری قیامتمون برپا شده با مردن ما چنانچه رسول الله صلی الله علیه و رو به یکی از اصحابش میکنه میگه که هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم إن يعيش هذا الغلام در روايتي فعسى أن لا يدرك الهرم حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة من ساعتكم يعني مرقشم وفرابر اسمي يكن شخص قبير بشي هماشم وممي ان يعني قيامتهم بارفهم قيامتهم ما ماست تنهت رسول الله صلى الله عليه وسلم در حديث من القبر أول منازل الآخرة فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه أولا منزل منزلقاه آخرات قبره كسياز این مرحله نجات بیابه مابخیش نجات پیدا میکنه و الا منج منو فما بعده اشد من اگر اینجا خوب جواب پس نده اینجا نجات نیابه در قبرش اولین منزلگاهش مابخیش سختتر و دشوارتر خواهد بود از قیامت حق مرگ حق و باید خودمون رو براش آماده کنیم سیزدهم قسمت از حدیث اللهم لک تو اسلام یعنی تسلیم شدن و انیب الی ربکم واسلموا له انابت رجوع به الله جل شانه که میاد در زمن همین حدیث و اسلیم و اسلیموله یعنی تسلیم فرامین الهی بشید همطور که در سوره حجم میگوید فله اسلیم و بشر المخبتی فله اسلیم و تسلیم الله بشید به دستوراتش عمل بکنید و از منهیاتش پرهیز بکنید پایبند باشید فرامین الهی این الدین عند الله الاسلام دین اسلام یعنی پایبندیه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه تسلیم امامر الهی نشی دین اسلام رو نپذیری الله هیچ دیانت راستو نفذیره و هو في الاخرات من الخاسرین در آخرت جز کسانی خواهی شد اگر تسلیم امامر الهی نشی جز کسانی خواهی شد که از جمله کسانی ان که اهل خسارت و زیان چوز تبهکاران و ستمکاران خواهی شد این ستمت ظلمت به خودت برمیگرده عدم اسلامت ظلم و ستمه که تو در حق خودت روا داشتی هم در سوره بقره داریم یا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه و ادخلوا السلم یعنی اسلام رو همه درهاش واردش بشی نگید اینو انجام میدم اونو انجام نمیدم بعضی رو بگیری و بعضی نگیری نومنو به بعض الكتاب و نکفروا ببعض مثل یهود باشی همه چیز اسلام رو بپذیری هر چیزی که اسلام گفته بر سر و چش بذاری. او دخولو فسلم کفع. اگر از همه درهای اسلام وارد اسلام نشی و پایبند به اون نشی مستحق عقوبتی شاید الله تو را ببخش شهادت تو رو نبخشه. 14 می قسمت از حدیث فرمودی رسول الله صلی الله علیه و و بک آمنت. لک اسلمت وبک آمنت. اسلام قبلن یاد شد. اسلام تمسک به ظاهر اسلامه. تمسک به شرایع ظاهرية که الله از ما خاصتنا جناج جبرئیل اومدن زانو بزانی رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم نشستان گفتن مل اسلام اسلام چیه گفت نماز روزه حج زكاة ظاهره حسیه محسوسه گفت که ایمان قال أن تؤمن بالله وملائکتی وكتب ورسولك واليوم الاخر والقدر خیره وشر ایمان به الله و ملائکه در قلبه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ایمان به علم یاد اعراب اهل علم نمدن در حلقات علم نمی نشستان کسی که در حلقات علمیشنا از این مرتبه محروم میشه مشرف شدن نائل شدن به این منزلت منزلت ایمانی لازمش علمه که عرب نداشتن عرب گفتن ما مؤمن شدیم الله میگوید خیر شما مؤمن نشدید قالت الاعراب آمنا قلنا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا بگیید ما مسلمان شدیم شما فقط ظاهرتون اسلامه قلبتون شکوفا نشده با ایمان با علم شرعی علم که ایمان را میسازد علم انسان را می سازه شاید خودتونم در خودتون لمسش بکنید تقوای خودتون ایمان خودتون زمانی که در حلقه علمید و زمانی که حلقات علم نیست چگونه شیطان بر شما چیره میشه مسلط میشه دلتنگ میشید غمگین میشید افسرده میشید والله چنینه علمک انسان نورانی میکنه علم انسان به انسان شکوفایی میده به انسان دلداری میده تو معنی میده سکینت میده و وقار میده به امجده الله جل ما من قوم يجلسون في يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة قوم من كبر يا الله بنشينا مقارن كفرشت جان قرده قرده ونها حلقة بزنا وحمد الله برنا نازل بشه بسكينة إلهي برقلب ونها فرود بياد وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة علم علم بإنسان قلب إنسان إنشنين سي قلم ده إنشنين شكوفا ميكونه إنشنين پربار نورانی میکنه و اون علمی نور به قلب میده که منشهش وحی باشه قرآن و سنت باشه و بکه آمند ایمان بین که الله آفریدگاره پروردگاره خالقه پروردگاره مدبر امور ماست رزاق ماست و معبود ماست تنها خداشناسی نباشه فقط الله را بشناسی نه بلکه او را به یگانگی بپرسی، یک تا پرست بشی الله پرست بشی حق پرستشش را به جا این ایمانه حق پرستش الله را به جا این ایمانه حق پرستش وقتی هم به جا میاد که منشه علمی داشته باشه علم و درایت به شرع الله داشته باشی ربنا ایننا سمعنا منادین ینادی لیل ایمان ان امنوا بربكم فامننا و اد ندای رسول الله الله علیه و سلم به عنوان پیغمبر الهی بشنوی تا بهش ایمان درست بیاری ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابر ان نتیجه شیسه مرشه سمری شینیدن و اینه که تو دوست همراه صحابه و پیغمبران و صدیقین حشر بشی و با رفیق اونها در فردوس اعلی بشی این تمع در تو میاره این ایمان اما اسلام ظاهری نه اسلامی که فقط سرزبونی باشه فقط ادعایی باشه این سمره رو این نتیجه رو نداره ایمان به الله به اون حقوقش تمامی حقوق از معرفتش از سناختش از ایمان به اسما و صفاتش بتونیم الله چه اوصافی داره چه حق و حقوقی به گردن ما داره باید بدونیم یاد بگیریم این مصداق شهادت هست که در تشهد میگیم در خطام نمازمون که خواهد اومد و مصداق شهادت نیست که معزن در نماز و در اقامه نماز میگه. شهد الله إله الا اله الله شهد الله الا اله الله گواه بر اینکه الله معبود به حق است این ایمانه الله را معبود به حق بدونیم همونطور که در ابتدای این داشتیم اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ایمانه بین خصایص الهی باید داشته باشیم از نورش از قیومیتش از تمامی صفاتی که داره اسلام و ایمان وقتی که باهم بیان معناشون متفاوته چنانچه در اینجا داریم اسلام میشه ظاهر ایمان میشه باطن ولی وقتی که جدا بیان مثلا ایمان به تنهایی یاد بشه یا اسلام به تنهایی یاد بشه همدیگر رو دربر میگرن آها آه چکه اینجا جای بحثش نیست مثالش واضح مشخصه مثل بحث عرب که گفتیم عرب ادعا کردن که ما مومنیم الله میگه نه شما مؤمن نیستی شما مسلمانی پس اسلام هرگاه با ایمان بیاد معنای دیگری پیدا میکنه اسلام میشه ظاهر و ایمان میشه باطن ایمان به الله بهدانیتش ایمان به پیامبران الهی ایمان به کتاب های آسمانی ایمان به فرشتگان الهی با ایمان داشته باشیم این همه مشمول این و به که آمن تو میشه و ایمان به روز آخرت هرچنگ که تکرار شده و ساعت و حق و جنت و حق والنار و النار حق ولی که باز اینجا تجدید میشه تکرار میشه برای یادآوری برای اهمیتش اهمیت ایمان که انسان حریص باشه برای رسیدن به این مقام مشرف بشه به این مقام مقام ایمانی مثل صحابه باشه از جمله مؤمنین باشه و با ایمان به قضا و قدر الهی خیرش و شرش رازی بشه به قسمت الهی قول و امنا الله و ما انزل و ما انزل الى و اسماعيل و اسحاق و يعقوب ایمان بیاریم به الله و به آنچه که بر پیامبران نازل شده و ایمان بیاریم به پیامبرانی که الله فرستاده اللهم لك اسلمت پایبندی به امور ظاهری اسلامه و اینکه امانت اعتقاده شناخت عقیده هست عقیده خودمون رو بشناسیم بفهمیم اهمیت بحث عقیده هست یاداوریه ایمان با شناخت وحی آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم تغذیه میشه هیچ راه جزئی نیست باطن قلب تنها راه اصلاح قلب علم شریعت نماز ارکانش یاد گرفتن وظیفه شما وظیفه من و شماست ولی که بالاتر از اون وظیفه پاس داشتن اون نماز با حق خشوعش ادا کردن هدف حل مؤمنون فراموش نکنید رسیدن به اون مقام خشوع تا اینکه جز رستگاران بشین و این مقام خشوع جز با اصلاح عقیده و اصلاح ایمان صورت نخواهد گرفت پونزه قسمت از حدیث و علیک توکلت اللهم لك اسلمت و بکه آمنت و عليك توکلت توکل با قلبه توکل با عمله توکل با گفتاره رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما یاد میدن و سن منع از این انواع توکلی که باید بر با الله داشته باشیم از انواع اعتماد بهمون یاد میدن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پیامبری را دیدم. یه نفر، همراهش دو نفر پیامبری دیگر هیچ کس پیامبری. مجموعه بزرگی دم فکر کردم که امت منن گفتن که امت موسیس یک مجموعه دیگری دیدم بزرگتر از اونها. امت من معرفی شدن. بعد فرمودن از اینها هفتاد هزار نفر وارد بهش میشه بدون حساب. صحابه اومدن با خودشون هر طریق یک اسوار نظری کردن گفتن اینا صحابه ان گفتن اینا نمیدونم مجاهدینن اینا فلانه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد میاد نزد و میگه که میدونید اینا هم الذين لا يسرقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون بحث توکل عكوشه بدنا مشى الصحابه و يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم دعاك ومن ادينوش قال انت منه هذه نفته الظنه فريق وارده بهش مشان بدون حساب میگه انت منهم تازون هي یکی از صاحبهای دیگه بلند میشه میگه که برای منم دعا کن گفت سبقهك بها عكاشه و قاشس القاد قرر دیگه خلاص درش دیگه بسته شد یک نفر خواست و تموم شد کاش که ما اون بودیم چه صفات بیجگی هایی دارن این 70000 نفر اولیش از اون نماد توکلی که اینها دارن لا یکتو عمله در عملشون بی جهت اعتماد به اسباب نمی کنن چیزی که سبب نیست سبب قرار نمیدن نمک رو همینطوری جدا در اویز نمی کنه خب چرا نمک آویز بکنه نعل اس تو راه تنرو میش زیر پاد گذاشتن که چرا چش زخم دفع میکنه یعنی این نعل اس مالک دفع چش زخم حسادت هست و دلیلی داری از شرع الهی از کجا دونستی که این نعل اس یا این آب آب دریا چش زخم رو از تو دور میکنه یا اون چش در ماشین اویز میکنه یا اون پارچه سبز و اون نمیدونم از کجا آوردی رسول الله صلی الله علیه و شرک است شرک رسول الله صلی علیه و وسلم افراد میان بیعت بدن در گردنش تاری از کمان آویز بوده رسول الله صلی علیه و وسلم اونو پاره میکنه باش بیعت نمیده شرکه نه تجربه ثابت کرده به تخته بزن از کجا آوردی به تخته زدن چیه چه ربطی داره به تخته زدن و چش نخوردن؟ شرکه خلاف توکله توکل یعنی اعتماد به الله با گرفتن اسبابی گذاشته چاقی میگوره سبب. قرار داده که ببره بعضیا فکر میکنن از توحید اینه که ما بگیم که نه چاقو نمیبوره خدا هست که میبوره خب چاقو الله گذاشته که ببره نه چاکو گردن اسماعیل رو نبرید آتش ابراهیم رو نسوزان اونجا معجزه بود اونجا معجزه بود الله آتش را گذاشته که بسوزونه اسباب سبب گذاشته که بسوزونه از توکلت و اعتمادت بر الله اینی که از جهنم الهی از آتش الهی بترسید برای اینکه الله تو را نسوزنه نماز فرض پنج وقتت از تو فوت نشه تا اینکه اونجا الله عذابت نده غیبت نکنی دروغ نگه اسباب این توکله و على ربیم ی توکلون و علی توکل بار الله بر تو توکل میکنم یاریم بده یعنی بر توکل هم اعتراف و اقرار هم خواستن و خواهشه براله ها بردا توکل میکنم پس منم یاری بده بر این توکلت مقام سختیه توکل مقام متوکلین مقام جایگاه آسونی نیست همینطوری داغ نمیذارن لا یکتون نه اینکه داغ اصلا نمیچور اساسا هم بر اصحابش داغ گذاشتن اون مریضی که میدونسته که علاجش درمانش این داغه نه اینکه الکی رو سرگردن هرچی حالا امتحان میکنیم شاید به درد بخوره شاید نتیجه ای بده این توکله این توکل نیست توکل گرفتن اسبابی که یا از شریعت ثابت شده یا اسباب محسوسی گذاشته دلیری بر اون مثل نمک تو آب میریزی شور میشه خب این اسباب حسیه دارو که دکتر تجویز میکنه تجربه کرده روی حیوانی روی انسانی میدونه نتیجه از یک فرمولی برای خودش داره ولی این اون چیزی که سبب نیست به چوب زدن نمیدونم کلیت تکان دادن این همه خرافاته چه ربطی داره؟ ربط حسیش کجاست؟ که آب دریا یا نمک چشزخ رو دفت می کنه؟ تجربه ثابت کرده تجربه دلیل نیست تجربه وقتی دلیلی که اثر حسی داشته باشه ملموس باشه نه اینکه غیبی باشه چشزخ یک مسئله غیبیه تا از کجا فهمیدی که چش چشزخ داره بعد اون زخم رو دیدی که این وقتی که اومده این یعنی تیر و سهم اون کسی که چشمش شوره این سهمه وقتی که از چشمش مثلا بلفرد مورد هدف قرار داده اون شخص محسود بعد مثلا این نمکه سبب شده که این فر این تیره به هدف نخوره از کجا فهمیدی مگه دیدی تو دیدنی نیست غیبیه چون غیبیه نمیتونه نه اون دریا آب دریات دریا نه اون نمکه ده اون چوبت مانع، اون چش زخم حسادت بشه تنها چیزی که شر گذاشته برای دفع چشم حسادت از کار شرعیه از کار صبحگاه شامگاه از کار خواب همین نمازها و طاعتها و وردت. ها و وردات ها مانع خوردن هفت خرما اول صبح مانع خرما عجوه ولی این چیزی که اون چیزی که سبب نیست سبب قرار بدی هر فعلی باشه اینها، اینجا یک مثالی میزنه اساسا از جمله افعالی که خلاف توکل داغ گذاشتن لا یکتبون ولا يسرقون طلب الرقیه نمیکنن با زبانشون مثالی از گفتار زبان از کسی طلب نمیکنن خودشون اعتماد بر قرآن دارن نمیگن این مله تو فلانی داد ردخور خورد نداره تو ما بخون نه خودشون اعتماد بر الله دارن اعتماد به کلام الله دارن سبب را گرفتن سبب شرعی را گرفتن قرآن شفاست در قولشون در گفتارشون کمال توحید رو مراعات میکنن دقت دارن در حرف زدنشون در خواسته هاشون این توکل اعتماد بر الله در گفتار ولا یسترقون ان استلابه روقی نمی کردن از کسی ولا يتطيرون تطير بدبینی بدگمانی یک عمل قلبیه اولی عمل جوارح داشتیم دومی گفتار داشتیم ایمان قول و عمل و تصدیق عمل قلب از خونه بیرون اومده چراغ قرمز شده یک چراغ دو تا چراغ امروز نحسا از کجا فهمیدین چهارشنبه ناخن نچین نحس از کجا آوردی نحسی این بدشویی و بدگمانی از کجا آوردی سالله بترسید بعضی از کلمات به جاش به کار برده نمیشه ما مؤاخذه میشیم خیلی چیزا هست این بچه نحسه این پا قدمش نحسه این به دنیا آمد. ماشین هم تصادف کرد این نمیدونم مهمون بخونم اومد فلانی شد چه ربطی داره این شومه بدبینی رسول الله صلی الله علیه و سلم فالنیک را میگشید خوشبینی خوبه ولی بدبینی نه بدبینی خلاف توکل خلاف اعتماد بر الله بس اینها سه تا نماد بود سه مثال بود بر اصلاح توکل اعتماد بر الله با گرفتن اسباب دینی و دنیاوی اسباب را گذاشته مثلا در رقیه شرعی قرآن گذاشته اسباب دینیه و در دارو و درمان اصلا عجوه به عنوان یک دارو برای دفع یا باطل شدن سحر و جادو دنیاویه انتو معلوم بومون رو دنیا کن یا عباد الله تدهو ولا تدهو بالحرام دنبال دارو باشید ولی با حرام نه مشروب نمیشه دارو باشه این توکل نیست دارو فقط حلاله فإن الله لم يجعل ما حرم عليكم من دواء الله كيف يقدر حراماتون دارو و درمان قرار نداده تنبل دورو درمان باشی یا درمان دنیوی یا درمان دینی پاکنا الله بحمد سبحان الله والحمد لله صلى الله محمد و آل محمد <سؤال>